دروغدار نادرستی نظریهای نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام یزدان با درود خدمت شنوندگان گرامی قسمت 24ام برنامه برابری رو در خدمت شما هستیم در قسمت گذشته ما آخرین نقدها و آخرین بحثهایی که در مورد بحث فروید رو بحث ببخشید بحث داروین رو داشتیم شروع کردیم و می‌خوایم دیگه در قسمت 24 به طور کامل پرونده رو ببندیم دیگه وارد فکت های تاریخی بشیم تا اینکه به مددهایی که در قسمت‌های اولیه مطرح کردیم اون مددا رو در حد توانمون اثبات بکنیم مثلا آقای راه مهر به بحث داروین که در واقع ما به داروینیس ها بیشتر انتقاد داریم. نقدمون به داروین رو گفتیم دیگه ایشون نه. مثل اون هم دورای خودشون خیلی نه. دلش نمیخواست بگه اینا از کجا یاد گرفته بله حالا یه نقدیم به داروینیس ها می‌کنیم بعد اشاره میکنیم که آیداروین داروین رو از کجا یاد گرفته بوده ای دکتر مویبی دیگه دستور فهم که باید ببندیم, ببندیم. 24 تموم کنیم و بریم سوار موابس تاریخی. تاریخی من تلاش میکنم خیلی خلاصه اینا رو بگم و در پایانم هم دکتر فرمایشاتشون رو که تاریخ. از بخش 25 بریم تو بخش تاریخی ایرادی که به داروینیست ها داریم و با کل داروینیست داریم حالا ضمن این که ازش خیلی سوء استفاده ها شده بله. یک بحث دیگه اینه که اینا اومدن همون های شخصی خودشونو تو دویست سال گذشته ارائه دادن اینا شده مبنای حرفی که مثلا اشاره هم کردیم میگن که آقا داروین تا میگه داروین مردم میگن آها همونی که میگه انسان از میمون درست شده بعد بعضیا میگن آره بعضیا میگن نه شروع می‌کنن با هم دعوا کردن اصلا بس این نبوده داروین اون موقع همون مشاهدات خودشو که گفتیم گفته بوده شاید هم مثلا مشابهتی رو درباره انسان مطرح کرده گفته حالا که اون سهرها شبیه همن این لاک‌پشتا شبیه همان مثلا ببینید ما هم چقدر شبیه گوریلایم شبیه شامپانزایم انگشت شست داریم دو تا سینه در قسمت دو تا پستان در قسمت بالای سینه داریم لاله های گوشمون کاملا شبیه همه مثلا اینارم هم گفته اما دیگه خب اون موقع نه دانش اینقدر کفایت میکرده نه هم که دیگه دنبال شده که اینو بیان بگن آقا واقعا کی کیه؟ بعد این داروینیست ها اینو هیچ وقت نیومدن درست توضیحش بدن بازش کنن که آقا این اصلا اصل ریشه رو بگین تا علم ژنتیک و رویانشناسا ها ژنتیک جنتیک پا به عرصه نزاشتن داروینیست هایی دکتر نتونستن این مپس و برای ملت برای مردم برای جان توضیح بدن عاجز بودن و این علم ژنتیک بود که گره رو باز کرد و ما در یک نشستی گفتیم که اینا از یک نیای مشترکی راسته نخستی ها بنابرای پریمیر پدید اومدن که بعد اومدن جلو هومونیدها ها، اول لیمور ها جدا شدن، بعد حساب مانکه یا گروه میمون ها جدا شدن، بعد گیبونها جدا شدن، بعد اورانگوتانها، ها، بعد گوریل ها، بعد شامپانز ها و هومو... مثلا هوموساپیونس هم که در پایان این رشته این طرفی باقی موند. حجم مغزش بیشتر شد و اینا یک توضیح علمی ژنتیکی از اون سنگواره همه چیش درسته اما ها هیچ وقت نتونستن این رو توضیح بدن این ایرادشون بود که تو این 200 سال رو گذاشته همه رو مچل کردن شایدم دانشش رو نداشتن و اما حالا گفتیم آقای داروین من مثل بقیه اینو از کجا یاد گرفته بود ما تو به واسه تاریخی اون بحث هم بیرونی رو میارم از اون مثال زیاد داریم من به مشخص ببینم آقای داروین حرفش از کجا یاد گرفته بود شخصی به نام عبدالعزیز ابن محمد نصفی معروف به عزیز دین نصفی از عرفای فارسی نویس صده هفتم بود هفتم هجری قمری او در فرارود میزیست ماورا و نهر در 617 هجری در زمان حجوم مغول ناشار شد اونجا رو ترک کنه به سمت داخل فلات ایران من مثلا منصوبه به شهر نخشبه که امروز در ازباکستانه و بهش میگن همون نصف این باشگاه نصف قارشی رو که دارن نخشب یا نخشب به هم توی دو قرن سکوت دکتر زریمکوب آوردن نخشب هم آوردن یعنی مثلا اون چیز رو نخشبی میگن نخشبی هم میگن مثل دو... دادویه و دادوی دیگه دو هر دو جور یا بابویه و بابوی, بابوی. بله. بله. جادویه جادوی یا بله. ماسکوی و مسکوی هم ابن مسکوی هم بله. اینا اینطوری حالا خونده میشه دیگه نقشاب گفت یاد مرحوم دکتر محمد نقشاب افتادم بله بله بله نسبت بله. بله. خداپرستان اساس بله. این آی نصفی مال اونجا بوده بعد از پیروان تحقیق علمی بوده در اون دوره و در مسائل مربوط به عقاید و تصوف هم استاد بود از کتاب مهمش میشه به کشف الحقایق نام برد مبتنی بر فلسفه و ارفان ده اصل کتاب از ایشون به جا مونده دارم توضیح میدم که دوستان بدونن ایشون آدم کمی نبوده از جمله معدود کسانی که دکتر بحث وجود رو وجود رو وجود در کتابش مطرح کرده یک نکته مهم در زندگی نامه ایشون اینه که حالا بعد توضیح میدیم او با آرای حکما و عرفای پیش از خود آشنایی داشته یعنی به منابع مثل فردوسی به منابع پیش از خودش دسترسی, دسترسی داشته کم تر کسی اون موقع دسترسی داشته و آثارشو به زبان فارسی خیلی ساده می نوشته نصفی عقاید مختلفی رو بیان می کنه. بیشتر میگن که او به جماعیت گرایش داشته که اونا رو اهل وحدت میخونن این آی نصفی خیلی آدم جالبی بوده الان من این مطلبی که اینجا آماده کردم و براتون بخونم از مریدان شیخ سعد و بوده ایشون که قسمت عمده زندگیش رو ارز کردم در خارز گذرونده بعد حمله مغل اونجا رو ترک می‌کنه. ایشون زمان مرگش مشخصیست میگن بین 680 تا 700 ایشون درگذشته. پس از حمله این میاد شهر بخارا بوده از خارز میاد بخارا بعد اونجا رو ترک میکنه و به سمت اسفهان و شیراز میاد رضا هدایت درباره نصفی یک تذکرهی داره میگه که با سلطان جلال الدین پسر خارزشاه معاصر بوده شیخ سعد هموی شیخ سعد هموی گفته که هر سری که من در 440 جلد کتاب پنهان کردهام، عزیز نسفی در کشف حقایق اظهار کرده است عزیز. یعنی آدم قابل واقعا اعتناعی بوده ایشون هم همون مشکل چیزو داشته طبعا پیشینیان خودشو داشته یعنی در گفتن اون حقایق یه مقدار معذوریت داشته علت نامعلوم بودن رویدادهای زندگی نصفی و گمنامی وی خیلی نمیشناسنش افزون بر پریشانی و بی سیاسی اجتماعی دوران زندگیش روحیه وارستگی گوشگیری احتراز از شهرت طلبی و گریز از مراکز قدرت بوده که ایشون امروز یه مقدار بساب کمتر شناخته شده بعد جالبه تو یکی از کتاباش میگه که اکنون من از خود چیزی نمیگویم تا مرا به کفر نسبت نکنن یعنی همیشه مثل چیز دیگه دو دو دو. مثل خیام دیگه اون فعل گویند همیشه توی شعراش هست یعنی میگه اینو که مثلا میگن با مثلا هوری و می و اینا مثلا میگه گویند با های و رو می بهشت خوش است. میگه من که نمیگم که مثلا اونا میگن همیشه این همیشه مشکلات رو داشتن دیگه حافظ میگن که اون شعرش اون غزلش که پایانش اینجوری پایان غزلیه که میگه گر مسلمانی از این است که حافظ دارد آه اگر از دیروز خوبت فردا فرده, فرده. فرده. یعنی که موعد شاد باشه شاد نباشه دیگه حاکم میخوادش رو میگه بکشین داره میگه معاد نیست ده. میگه نه بابا اینا شعر منو کامل نگفتن میگن خب همونجا فعل بدايه اینو میگه یه بیت قبل از پایان غزلش اینو میگه بابا من اون قزل رو گفتم اینجا هم گفتم این حدیثم چه خوش آمد که سهرگه میگفت بر در میکدی با دف و نی ترسایی گر مسلمانی از این است که حافظ دارد آها اگر از پس امروز بوبت فردی من نگفتم که اول ترسایی ترسای در میکدی گفت یعنی اینا همیشه این ملاحظاتو رو داشتن, داشتن دیگه بله بعد حالا این نصفی تو این کتابش این مطلب خیلی جالبی داره خدا کنه که پا پیش از پایان زمان من بتونم اینو بخونم هستش همون زمان هست این 650 سال پیش از داروین زندگی میکرده تقریبا 800 سال پیش از ما یک متنی از کتابشونو من میخونم که دوستان ببینم ما وقتی میگیم این بیخودی نیست نصفی میگه آنگاه از اناسور و تبایع اروج میکنند و به نبات می کنید از عناصر یعنی مثل کربون و هیدروژن و اینا و تبایع معنای تقریبا مواد عالی میده دیگه دقیقا. یعنی چیزایی که به تب رسیدن آه. آره. کامل شدن خروج میکنن و به نبات میآیند یعنی اول گیاهان ساخته میشن خب همینطور هم بوده دیگه اول تو دریاها گیاهان درست پدید میان بد جانبرن. و اول صورتی که از صورت نبات پیدا میکنن صورت تهلب است تهلب یعنی خزه و ما در دانش زیستناسی میدونیم که اول های سبزاوی بودن که به وجود اومدن, به وجود اومدن. موجودات اولیه اونا بود... بله ببینید دکتر اینو داره 800 خورده ای سال پیش میگه بعد ما گفتیم که ایشون به آرای حکما قبل از خودش, خودش دستشی داشته دستش دستش. یعنی ما وقتی اون چیز جمشیدو گفتیم که دیدیم که چطوری اینا دستبندی کرده بودن اون شاهنامه رو گفتیم آه. که میدونستن پنجا پنجا بوده و اینا پس این دانش ها بوده یعنی ما اون موقع گفتیم که ایشان می دانستن که می توان تخمه ها رو از بدن جانوران جدا کرد و با هم جفت کرد جایی که به جمشید گفته میشه که تخمه های نرینگان آدم یعنی میدونستن تخمه نریین جداست چارپایان پایایان های گوناگون روی زمین رو با هم جفت جفت کن یعنی این علمی که به صفی رسیده بوده باز مال پیشینیانش بوده بعد میگه که به صورت تحلب یا خزه است اولین چیزی که به وجود میاد و این تهلب گیاهی سبز است که در آبها پیدا میآید و به مراتب بر می آید و صورت نباتات و اشجار پیدا میکنند. یعنی میگه اون گیان اولیه کم کم گیان سانویه و بعد درختها رو درست میکنند. اینم این هم درست در نظر علم امروز کاملا درسته تا به حدی که شجر به حیوان نزدیک شود و همچون درخت و خورما و چندین هزار سال دیگر در این مرحله میباشند. و اول صورتی که صورت جانوران پیدا می کنند اینجا رو دقت کنین صورت خراطین است و این خراتین کرمی سرخ و دراز و باریک است که در گل و زمین آبناک بود اگه یادتون باشه ما گفتیم که شاخه بزرگ تناب, داران تناب داران. اول به وجود اومدن اصلا اولین موجوداتی که دارای حرکت بله یعنی به صورت تناب, تناب بودن به وجود این میگه به صورت کرم اول به وجود اومده و صورت جانوران به تدریج پیدا میکنن تا به حدی که حیوان غیر ناطق به حیوان ناطق نزدیک میشود شما ببینید سیر تکامل رو داره تو این چند خط به ما میگه حالا کی اون زمان همچون بوزینه و نسناس دقیقا اصلا همون نسناس میگه که اول یک جانوری به وجود میاد که شبیه یه حد واسط اینطوری بوده و چندین هزار سال سال دیگر در این مرتبه میباشند یعنی میگه طول میکشه اینجوری نیست که مثلا یه دفعه این میمون بوده بد شده چیچیک نه این چند تا آنگاه از حیوان به انسان می میآیند همون چیزی که امروز علم زیستشناسی شناسی و ژنتیک میگن اون نخستی ها چندین هزار سال طول کشیدن تا کم کم گفتیم که لیمورها جدا شدن اونور ها جدا جدا جدا, جدا تا ساپینس جدا شد ببینید همین روند دیگه آنگاه از حیوان به انسان میآیند و آی دکتر این خیلی عظمته و اول صورتی که از صورت انسان پیدا میکنند صورت زنگیان است آه. یعنی میدونسته تو آفریقا اول اینا اینجوری آه. درست شدن زنگیان اول میدونسته تو آفریقا یعنی جایی که سیاپوس حد واسطه سیاپوس نبوده و, قطع و قطعا ری این ریشه اما داره نشانی آفریقا رو میده بله باور کنین ما و دوستانمون هرچی میخوایم اینو توضیح بدیم میدونین یک کم آدم دوچار فراعل میشن یعنی باد برید توی دیگه عوالم دیگه. دیگه دیگه اصلا درست یعنی چجوری آخواد توضیح بدیم این هم میدونسته که اینا آفریقا بودن هم میدونسته اول جلبک های سبزابی بودن همه دو... همه چیزو میدونسته بود 805 سال پیش بعداً هم دفاً نمیدونسته ریشه تا پس اینا... پنجشای قدیمی اینا... قبلی داشته انباشت داده ها بوده تازه بعد این همه سوخت و سوز کتاب و چی و اینا خیلیا به ما میگفتن آقا عمر ابن خطاب که آمد اومد کتابا رو نسوزون دروغه آقا بفرما همین ابو بکر البغدادی که ببین الان داره چیکار میکنه چی چی نبوده اینکه الان اینطوره اومو و شده بوده بعد این همه سوخت و, و, ای و سوز باز این مونده بوده و این اینا رو به این صورت خوشبختانه دیگه این مکتوب هست کسی نمیتونه بزنه زیرش یعنی ما خواستیم بگیم که این داروینیسم و جهان قرب و چی و اینا یک کم پژوهش. یعنی یک کمم خودمونو بشناسیم یک کم برمون هم نگاه کنیم بد نیست شاید که به این خودشناسی باعث بشه که یه مقدار بلد. این اعتماد به نفس جوانای ما بالا بره اینقدر همش نگاهشون یک بعدی به یک سمت نباشه اگر داروین میگه اگه علم ژنتیک میگه ما حالا چطوری بیان بگردیم توضیح بدیم 800 سال پیش دستکم ایشون ثبت کرده اینا رو نمیتونم این دیگه, دیگه فرق... بگیم که در واقع چون این کتاب نسخه قدیمی داره نسخه قدیمی هم دقیقاً 800 سال پیش ما نخل... افاضی جام که نداشیم بیان نخل... مثلا این نسخه رو مثلا جل بکنم بیان مثلا... این که دیگه این که دیگه بگم مال معلوم نیست کی دیگه این وقتی که میگه داره به جمشید تو فرگرد دوم وندیدار داره میگه که این کن تخمه ها را تخمه های رمه ها، ستوران مردمان و پرندگان را به جان داره فراز برای اینا اون که دیگه مال چند هزار سال قبل از اینه که اه. مثلا حالا من بعدن چون بخوایم بارد مبحث تاریخی بشیم بند فراوان به شاهنامه ارجا خواهم داد و برای که اکثریت جامعه غرب زده ما متاسفانه به ویژه جامعی دانشگاهیمون مسخره میکنن این موضوع رو اول تو نشست های آینده من وقتی میگیرم از شما درباره ریشه های سرودن شاهنامه و این شاهنامه از کجا آمده توضیح میدیم بعد وارد میشیم که هر وقت ارجاع دادیم دیگه تمسخر بله نشو. قسمت 24 اینجا به پایان میرسه در قسمت 25 دیگه وارد مواحص تاریخی خواهیم شد و مباحثی که بسیار چالش برانگیز هست از دوستان و منتقل گرامی هم میخواییم که دقیق به مباحث گوش فرا بدن و ما رو از انتقادات و پیشنهادات و تذکرات خودشون بی نکنند تا شروع قسمت 25 شنوندگان گرامی رو به خداوند متعال میسپاریم خدای خدا نگه داریم سپاس گذارم